سوره علق بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که بخشاینده و با رحمت رب است بخوان به نام پروردگار همان پروردگاری که همه را خلق کرده است خلق الإنسان من علق همان که آدمی را از لخت خونی آفری اقرب و ربک ال الذي علم بالقلم بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است همان خدایی که نوشتن با قلم را آموخت علم لم يعلم و به انسان آنچرا که نمیدانست، است تعلیم داد حقیقتن انسان تغیونگر است زیرا خود را بی نیاز می پندارد اینه که حالان بازگشت همه به سوی پروردگار توست آیا دیدی دی آن کس را که نهی می کرد اذا بنده ای را که داشت نماز می گذارد امر به من خبر دهید اگر این بنده بر راه هدایت باشد و یا به پرهیزگاری فرماندهد چه میگویی اگر انسان تغیانگرب حقیقت را انکار کند و از آن روی بگرداند آیا ان که خدا همه عمل او را می بیند کلا لا ینتهی ل یمته لنسفعا بنا این چه نیست که می پندارد اگر از رفتار خیش دست بر ندارد موی جلو سرش را گرفته و به جنانم میکشید نصیت کیبتین موی جلو سر هر دروغگو گناکار را ف پس هر کرا میخواهد به فریاد رسی صدا سز ما نیز مأموران جهنم را فرا میخوانی هل <تصفيق> لا رو و قوری چنان نیست که میپندارد او را هرگز اطاعت مکن و خدا را سجد نمای و به او نزدیک شد راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیب کاری از مؤسسه قیامبر مهر و رحمت سلالله علیه و علیه و سلم